دو یعنی درس دومی که مرتبط با منقوس و مقصور و ممدود هست تثمیتها و جمعها جمع تصحیح تثمیتها اینها مفرد هست به چی برمیگرده؟ به منقوس برمیگرده بله چون مقصور رو در درس بعدی توضیح میده تثمیتها یعنی مصنای یا تثمیهه منقوص و جمعها و جمع منقوس جمع تصحيح البته جمع صالمش جمع مكسرشنا خب بعيد في المنقوس الأمثلة المفرد المثنى جمع المذكر الصالم سحالك شنو آورده مفرد الرائي الباغي دائن منادن دجابش الافلام داده الراعی و الباغی اسم منقوصی هستن که الفلام دارن دائن و منادن الفلام ندارن حالا اینا همشون مفردن ببینین زمانی که کلمه ای رو که کلمه ای رو که اسم منقوس باشه میخوایم تصمیهش رو درست کنیم یا جمعش رو چطوری درست میشه الراعی مسننهش در حالت رفت میشه الراعیان در حالاتی نسب میشه الراعین، الراعی جمع مذکر صالیمش میشه الراعون، الراعین، الباغی مسنناش میشه الباغیان یا الباغیین، و جمع مذکر صالیمش میشه الباغون، الباغین، دعین جمع مسنناش میشه دعیان و دعیین، جمع مذکرش میشه دعون و دعین، منادن مسنناش میشه منادیان و منادیین جمع و ذکرشه میشه منادون در حالت رفت و در حالت نسوجر میشه منادین پس اینجا چه تغییراتی رو داد؟ خودش میگه در قواعد کاملا القواعد یفن المنقوسو میگه تصمیه میشه اسم منقوس بزیادتی الف و نون فی حالت رفت با اضافه کردن الف و نون در حالت رف وقینار دیگه در اعراب خوندید و یا ان و نون فی حالت النصب والجر و یا اونون میگیره در حالت چه؟ نصب و جر فی ما قبلا خوندیم مسند هرگاه مرفوع بشه الف میگیره با الف مرفوع میشه و در حالت نصب و با یا من بله یا مقب قبل مکسور جلم سالم هرگاه مرفوع بشه با واو و هرگاه منصوب یا مجرور بشه با یا مقب قبل مکسور این الان این چیز میگه بعدش بعدش نقطه دیگه معرد یائه انکانت محذوفتا میگه اگر در مفرد یاش یا محضوف بود یعنی زمانی که الف لام مانند دائن دا و میگه در حالت مسننا و جمع یاش یا برمیگرده معرض یائه با برگشتن یاش یا کانت محذوفتا اگر یاش یا حذف شده بود مثلا دائن در اصل بوده ادائی چون تنوین داشته الفلام نداشته شده دعیون دا شده دائن ولی زمانی که اینو ما موسنا کنیم یاش دیگه دوباره که میشه بر میگرده چون اون علتی که در مفرد یارو حصف کرده دیگه اون علتی اینجا وجود نداره که التقاء ساکنن بوده دائن میشه دایان رعیل میشه چی؟ رعیان رعیانی؟ ايان. رعونه <تصفيق> خب حالا میگه در جمع مذکر البته این نقطه رو در نظر داشته باشید در جمع مذکر سالم یا حسف میشه در مسننا برمیگرده سد و پنجه دومین قاعده یجمع المنقوس جمع مذکر سالمن بزیادتی وابل پس مسنعش رو توضیح داد مسنعش رو چکار کرد؟ گفت که در مسنع در حالت رکل الف و نون و در حالت نسب و جرچ میگیره؟ یا اونو و در مسنع گفت که یایی که در مفرد اگر حسب شده در مساند چی میشه؟ بر میگرده حالا در جمع مذکر شد در قایده سال پنجاه دوم توضیح میده که اینجا دیگه یا بر نمیگرده یجمع المنقوس جمع مذکر سالما به زیادتی وابن و نون او یائن فی نون جمع بسته میشه اسم منقوس جمع مذکر سالما با اضافه کردن وابونون و نون یا،, یا اونون در آخرش یعنی در حالت رف واب و نون میگیره و در حالت نفجر یا اونون مع حذف یا ایه با حفف چیهش؟ یا اش ببینید اگر شما دقت کنید ارراعی ارراعیانی ارراعوله دیگه نمیگیم ارراعیوله میگیم ار راعون این اینا در صرف در قسمت ناقص مفصل بحث شده هم خب مع حذف بس یا در جنس مذکر سالم چی میشه در اسم منقوس خاص میشه منقوس مثل رما ناقص دیگه منقوس ناقص <تصفيق> ولی البته دقت بکنید شما هر اسم فعل ناقصی رو اسم فاعلش رو درست کنید به این شکل است دعاء يدعو مش داعن اسم فائلش رما یرمی رامن رامیانی رامونه رامیتانی رامیاتون خوندید دیگه قبلا اون فرق میکنه دست. این جم تحصیف باید جم مکسر جداست جم مکسر که دارن ولی جداست جم مکسر تمام کلمات میتونن داشته باشن تمام کلمات نمی تونن جمل مذکر سالم داشته باشند. شرایطی داره که میاد. مثلا شما نمیتونید تونید کتابو جمل مذکر سالم ببندید کتاب کتابانی کتابونه همه ازتون میخندد. کتابون کتابانی کتوبون جمل مذکر سالم نداره. ولی اونا که می تونن جمل مذکر سالم داشته باشند می تونن جمل مکسر هم داشته باشند. مشکلی بری اینجور خب درس بعدی